صفحه 10 پیرمرد حالا دراز کشیده و به شیار خاکی تپه تکیه داده بود سرش به خاک تپه بود چشمانش به آتش بود دهانش در نیایش به یک سو باز مانده بود ماه روی او و روی آتش میتابید و این شب تیره را اندکی نور می بخشید. و پیرمرد میدانست که زمان آن فرا رسیده است که فروهر جسمش رها شود جاوید را صدا کرد، از او خواست که از ته خورجین بقچه سفید او را، بقچه که و مرموزی را که پیرمرد همراه خود آورده بود، به او بدهد. پسرک فرمان برداری کرد، جاوید بقچه را آورد، بقچه سفید و تمیزی را که محکم گره خورده بود آورد و در دستهای پیرمرد گذاشت. پیرمرد مرد بقچه را گرفت. با لرزان، گره های لرزان گره‌های کور آن را باز کرد. بعد به پسرک گفت که در برابر او روی زمین بنشیند، نگاه کند. پیرمرد خود را آماده کرد. راست چهارزانو نشست. از میان بغچه شال سفیدی درآورد، به گردن انداخت. فقط اراده آویختن به سنت و آیین بود که دست‌های او را نیرو می‌داد. شیشه کوچکی را که به دقت لای دستمال پیچیده شده بود درآورد، آن را به پسرک نشان داد، این شیره گیاه هوم گیاه مقدس بود که نوشیدن آن روان پاک سرتشتی را نجات می داد، شیره این گیاه نشانه قربانی بودن زمین و جسم و پیوستگی و تداوم زمین و انسان بود و رازهای آن، یاه را از کوه‌های غرب یزد و نواحی اشکزر چیده بودند در هاون چهار بار کوبیده از علک موی گاو رد کرده و سپس در آب مقدس آتشکده ریخته و سه بار صاف کرده بودند پیرمرد این آیین‌های کهنه را هم امشب به دقت برای پسرک گفت و از او خواست در سینه نگه دارد. افسانه و حکمت هوم البته در کتب مقدس یسنا و وندیدات آمده بود آنگاه پیرمرد از بقچه خود جام فلزی کاسه شکلی را درآورد این جامی بود که بیشتر از هزار سال در خاندان و آتشکدهی آنها نگهداری شده بود دور تا دور جام و پشت و روی جام به خط پهلوی با نیایش ها و شعر هایی از یشتها ها حکاکی شده بود. درون جام دور تا دور دایره هایی بود برای اندازه گیری پیمانه. پیرمرد ابتدا از شیره گیاه هوم به اندازه یک پنجم شیشه برای جاوید تا نخستین دایره ته پیمانه ریخت. نیایش نمود و به سوی جاوید دراز کرد. پسرک از کنار آتش بلند شد آمد کنار عمویش نشست و پیمانه را گرفت پیرمرد گفت بنوش پسرم این پیوند تو با زمان ابدی و این جهان است جاوید میدانست به چشم امو جان. جام هوم را گرفت به برد و یک جا نوشید زیاد نبود اما حتی مزه اندک تلخ آن انگار به تمام جسم و روان او شادی و تیزی تازه ای داد. مانند شادی و نیروی تازه ای شب بعد از مراسم صدرپوشان در خود احساس کرده بود. پیرمرد جام خالی را از او گرفت. باقیماننده را در جام ریخت، آن را به آسمان بلند کرد. نیایش کرد سپس آن را نوشید. جام را در دست روی سیناش نگه داشت، به تپه تکیه داد، دست دیگرش را پشت گردنش حلقه کرد، چشمهایش را به آتش دوخت. جاوید سرش سنگین شده بود و حالت رخوتی خوش داشت، میدانست از خستگی و گرسنگی نیست، اثر شیره گیاه هم بود، اهمیت نمیداد. میدانست هزارها نفر از این گیاه در همین جام منقوش از یسنا و یشتهای زرتشت نوشیده بودند و زنده مانده بودند. به عمویش به دستور بهرام نگاه کرد. پیرمرد حالا چشمانش به هم رفته بود، چهرش گلنداخته بود، پیشانی بلندش در نور آتش روشن بود. جاوید را به کنار خود خواند. پسرک به بالین او رفت. کنار او نشست، در کنار آن آتش پیرمرد دست جاوید را گرفت، جام را اکنون در دست جاوید گذاشت. وقتی حرف زد صدایش محکم بود و انگار دل شب سیاه را می شکافت. اول نیایش کرد، فراورانه مزده یسنو، ذره تشتریش و یدیور اهور دکیشو، مزده یسنو احمی، فراورانه آستی تسجا، فراوره تسجا. پسرم، من امشب از این جهان به زمان ابدی می روم. به سخنان من گوش کن و به فکر و خرد بسپار چون این سخنان تنها چیزی است که ما داریم. جاوید گفت اموجان اموجان من نمی گذارم شما اینجا. پیرمرد یک دستش را بالا آورد ساکت. پیرمرد گفت گوش کن جاوید تو یک زرتشتی پارسی هستی پدر تو، اجداد تو، نیاکان تو، هزاران سال چه پیش از حمله عرب و چه پس از آن با آین پاک پارسی زندگی کردند. آنها کیش و ریشه های خود را نگه داشتند. تو هم باید ریشه و پایه خودت را با آین پاک نگهداری، باید روان خودت را با کیش راستی پارسی زنده نگهداری. یادت بماند جاوید، یادت بماند. به مذهبهای دیگر احترام بگذار اما تو خودت و آیین و اصل خودت را نگهدار جاوید گفت به چشم پیرمرد گفت وقتی روان من از این جسم فانی بیرون رفت مرا همینجا بگذار و به تهران برو مرا در خاک دفن نکن. بالای همین تپه بگذار پسرک خواست حرف او را قطع کند پیرمرد باز دستش را بالا آورد گفت، این کار در گذشته سنت نیاکان ما بود. من که امشب به مرگ عجیبی در قربت می میرم، می هرچه هست با سنت نیاکانم بمیرم. جسد مرا آتش هم نزن، آتش مقدس را نباید آلوده کرد. مرده را بگذار و برو، در تهران تو کاری داری، برو آن را انجام بده، ما از مرگ نمی ترسیم. مرگ یک چیز بد و نخستین نفرین من است. برای ما مرگ فقط گذشتن از این جهان و پیوستن به نیاکان و اهورا است. و به یاد داشته باش که ما همه در آسمان چشم به تو داریم و موازه به تو هستیم. پیرمرد مدتی خاموش ماند. بعد با صدایی که کم کم محف می شد گفت یادت باشد. سلسله و تاریخچه خانواده ما به اندازه تاریخ همین سرزمین است. ما همیشه با این آیین در این کشور زندگی کردیم، تقریبا همیشه. فقط سیصد ست چهار ست سال پیش تا آنجا که من از پیرهای اجدادیم شنیده ام خانواده ما به هندوستان رفت. در آن سالها در دوران صفویه که فشار زندگی برای زرتشتیان زیاد شده بود، اجداد ما به بمبعی رفتند و چندین سال بین زرتشتیان پارسی آنجا زندگی کردند. اما بعد پس از چند سال باز به یزد به خانمان و کار و آتش کده اجدادی خود برگشتند. جا و ریشه های ما اینجاست. یادت باشد و آین نیک اهورامزدا آیین ماست و ما ما دوباره به هم میرسیم. رسیم. پیرمرد ساکت مند. به آتش نگاه کرد، باز لبهایش تکان خورد، گفت، به دنیا دل مبند که در پایان همه را مرگ دربر میگیرد و مورچه ها و کرم ها و خزندگان گوشت آدمی را خواهند خورد. پس از مرگ روان آدمی سه روز دوروبر لاشه میماند. روز چهارم هنگام صحر سروش مقدس میآید و روان را با خود میبرد که از پل رستگاری عبور دهد. وای بر کسی که روانش با خرد آین پاک روشن نشده باشد صدایش هم دیگر گرفته بود آه پروردگار من جاوید بسیار چیزهاست هاست که من میخواستم امشب به تو یادآوری کنم اما تو خودت تو خودت باید بفهمی با فکر و منش و اندیشه باید بفهمی پروردگار من اهورا پسرک عشقهایش راه افتاده بود پیرمرد باز ساکت شد. چیزی گلویش را گرفته بود. نگاهش به سوی آتش رفت. مدت درازی به آتش خیره ماند. بعد سرش را به سوی پسرک برگرداند. دست او را گرفت و آخرین سخنانش را بر لب آورد. من آسودم، جاوید و پس از اندکی سکوت افزود: اما تو چی؟ درباره تو نگرانم. سرش را به آسمان سیاه بلند کرد. چهار صفحه چهارده سه روز و سه شب بالای سر جنازه نشست. نه فقط به این دلیل که سنت گفته بود که روان آدم مرده تا سه روز دوروبر جنازه میماند، بلکه بیشتر به این دلیل که دلش نمی آمد بدن مرده عمویش را با آن که وسیعت کرده بود، این چنین تنها و بیپناه روی تپه ها رها کند و برود. وقتی کسی به این ارزشمندی و عزیزی می میرد، مرگ او باور نکردنی و دردبار است. چرست به رها کردن جنازه او برای لاشخوران و ماران و مورچگان. اما این همان چیزی بود که امویش به او دستور داده بود. شب اول تا صبح گیت بالای سر جنازه نشست. ترسش هم کم یا بیهوده نبود. ناگهان تنها و بیدفاع در شبی تاریک با مردهای روی تپه های ناشناخته گم شده بود. گهگاه هم همه باد یا صدای زوزه شغالی میان تپه و ماهور می پیچید و او را از جایش می پراند. باد شدت گرفته بود. و عبرهای سیاهی که از سر شب دوروبر ماه پراکنده بودند، اکنون تمام آسمان را پوشانده بودند. هنوز هوا تاریک بود که آسمان هم دلش ترکید و باران روی نش پیرمرد روی پسرک تنها، روی اساسه و قاطر خسته ریخت، و بدتر از همه آتش را خاموش کرد. شب به و سختی گذشت، دمدمه های سحر که باران کم کم بند می آمد، پسرک تازه گریش گرفته بود. نمی خواست گریه کند. سخنان امویش را به یاد آورد که گفته بود او و سایر نیاکان مرده در آسمان و بهشت مواظب او هستند. عشقایش را پاک کرد و دست امویش را که همکنون مانند چوب خیسیدهی شده بود در دست خود گرفت. آن سحر و تمام روز بعد اثر مرگ عمویش سبب شد که فکر و نگرانی پدرش را در تهران فراموش کند. جنازه امویش آنجا روی خاک زیر باد و آفتاب تنها و بینوا بود. پسرک همانجا روی تپه نشست. جنازه پیرمرد و دشت و تپه‌های برهنه را نگاه کرد و فکر کرد. خورشید و کوه و آسمان به او و پیرمرد مرده بیاعتنا بودند. دوردست از میان جاده خاکی دشت گهگاه ای رد میشد. یا کاروانی کوچک میگذشت یا تک و توک قاطر سوار و اولاق سواری هلک و هلک رد میشدند. نشست و در ماتم خود دنیا را تماشا کرد. قاطرش از بوته ها و خاروخس خسیده ی تپه ها می خورد. پسرک خودش هنوز اندکی خشکبار داشت. چیزی خورد و بلند شد، چوب و بوته گرد آورد و باز هر جور بود آتشی برپا کرد. شب دوم به تلخی و سختی شب اول نبود، بیشتر وامانده و خالی گذشت. خستگی زیاد او را چند ساعتی به خواب فرو برد. اما زوزه گرگ ها و شغال ها و سایر جانوران طبه ها پی, در پی خاموشی و سکوت شب محتابی را پاره می‌کرد و مجبور بود بلند شود و با چوب دستیش جانورانی را که با بوی مردار جذب شده بودند فرار دهد. روز دوفم تصمیم گرفت جای نش عمویش را عوض کند. اینجا در میان شیار شیب دار تپه برهنه جای خوبی نبود و یک باران تند ممکن بود نش را بشوید و به طرف جاده ببرد. جانوران ممکن بود همان شب اول نش را تکه پاره کنند. جنازه را روی قاطر گذاشت و آن را چند تپه بالاتر برد. مدتی گشت و دست آخر آن را به درون سوراخ دخمه قارمانندی که در دل یکی از کوهای خاکی پیدا کرده بود گذاشت. اینجا توی دخمه اندک پناه و امانی داشت. جنازه را خواباند. شال سفید خودش را روی جنازه انداخت. مقداری سنگ گرد آورد و جلوی دخمه روی هم چید. دخمک سنگی کوچکی ساخت و آتش تازهی هم روشن کرد. غروب که کارش تمام شده بود نشست. دخمک کوهستانی آرامگاه را نگاه کرد. سرش را به آسمان بلند کرد. نیایش کرد و امیدوار بود آنها خوشنود باشند. امشب شب سوم مرگ پیر مرد بود. تمام شب نشست. شب زنده کرد. آتش را زنده نگه داشت. و از دم تا غروب روز بعد را هم همانجا نشست یا راه رفت. روان عمویش را مونس و همدم شد. فکرش حالا باز کمی متوجه تهران شده بود. در فکر تنها پیمودن بقیه راه، پیدا کردن خانه ملک آرا و یافتن پدرش و بقیه خانوادهش بود. کاری که تا اینجا به قیمت مرگ عموی بیچارش تمام شده بود. هنوز به تهران نرسیده کلمه تهران و نام شازده ملک آرا در کوشهای جاوید زنگ شومی پیدا کرده بود. نزدیک ظهر روز چهارم بعد از اینکه با جنازه و روان عمویش بدا کرد و جلو دخمک را تا بالا سنگ چید و آخرین آتش را هم کنار دخمک روشن کرد و روشن گذاشت بخچه امویش، جام پیمانه، کتاب مقدس و سایر یادگاری های او را جمع کرد، در خرجین گذاشت و آماده ی حرکت شد. افسار قاتل را گرفت و از تپه ها پایین آمد. پای تپه کنار جاده ایستاد. سرش را برگرداند و به بالای تپه نگاه کرد. دخمه را نمیدید. به هر حال زیر آفتاب ایستاد و آخرین نیایش ها را برای امویش خواند و به سادگی به امویش و به اهورای پاک سوگند خورد که به آنچه امویش گفته بود رفتار کند. سوگند خورد کاری را که آنها آهنگ و اراده انجام آن را کرده بودند به پایان رساند. بیست روز از روز حرکتشان از یزد گذشته بود. سوار بر قاطر روی جاده خاکی از میان نمکزار سفید در هوای دم کرده زیر حرم و تابش سوزان آفتاب به سوی تهران راه افتاد. پنج صفحه هفته فکر یافتن پدر و مادرش نیروی امید و حرکتش بود. پدرش را می و برای او مهر و بزرگ داشت دنیا را قائل بود. چقدر دلش میخواست او هم همراه پدرش رفته بود، اما ناچار در یزد مانده بود تا از دکان پدرش نگهداری کند، ای دکان باید باز می مادرش را هم عزیزانه دوست داشت، مادرش سرور خانم هنوز جوان بود، سی و پنج ساله و زیبا بود. سرور خانم دختر کوچک میرزا داوود خان قالیباف کرمان بود که مرد زرتشتی بسیار با ایمانی بود. و چون از موریدان دستور اورنگ بزرگ پدر بزرگ جاوید بود چند سال پیش سرانجام کسب و خانمان خود را از کرمان به یزد آورده بود و در این شهر ماندگار شده بود. میرزا داوود خان قالیباف ازدواج دخترش سرور را با فیروزاقا پسر دوم دستور پیر آتشکده یزد از افتخارات و خوشبختی خود و خانوادهش می دانست. سربر خانم اکنون پس از هجده سال ازدواج با فیروزاقا مادر چهار تا بچه بود. فرخنده 17 ساله که حالا به خانه شوهر رفته بود. جاوید پانزده ساله شکوه که در ده سالگی به مرض آبله مرده بود و بالاخره افسانه سه ساله که این سفر همراه پدر و مادرش به تهران رفته بود. همانطور که سوار بر قطار از جاده خاکی و گرم بالا می آمد فکر افسانه هم بود که نور چشم همه و تحتقاری شیرین خانواده بود. هنگام غروب که برای نیایش واپسین ایستاد، آبادی کوشک نصرت را از دور می‌دید. پدرش پیش از این نام آبادی‌های بین قم و تهران و فاصله زمانی آنها را به او گفته بود. سر شب وارد آبادی شد که البته بجز دو تا قهوه خانه سوت و کور، یک طویله یا چپار خانه دولتی، یک کاروانسرای سرای کهنه و تک و توک اتاق و دخمه خشت و گل چیزی نبود. اهالی سر و پا به آبادی بدبین و بی بودند. جاوید از جوی کوچکی که از حوز پشت کاروان جاری بود به قاطرش آب داد. سر و روی خودش را شست، آب برداشت، پس از مدتی آمد زیر درختی لمید، افزار قاطرش را کنار سر خود به تنه درخت بست، چند تا زد خرجین و بقتش را زیر سرش گذاشت. از لابلای شاخه های خشکیده درخت، ستارگان و آسمان آبی را تماشا کرد و به فکر پوران بود. به یاد شبهایی بود که در بچگی تابستانها روی پشت بام زیر ستاره های روشن مینشستند و حرف میزدند. هر که از در آسمان داشت و با نور و فروهر جداغانهی از سوی احارام از دا به این دنیا آمده بود. او و پوران به ستاره های بیکران نگاه میکردند. کوشش میکردند ستاره های خودشان را آنجاها پیدا کنند و همیشه با دو ستاره روشن نزدیک به هم با یکدیگر دیگر موافقت میکردند و با فکر پوران به خواب سنگینی فرو رفت. سهر با خواب بدی باز خواب مرگ عمویش سراسیمه بیدار شد. نخستین چیزی که در بیداری دید یا ندید این بود که قاطرش ناپدید شده بود. فکر کرد شاید حیوان خودش را باز کرده و برای چریدن به سوی رفته است. اما وقتی درست نگاه کرد متوجه شد که ته بند افزار حیوان هنوز به درخت بود. بند چرمی را از وسط با چاقو بریده بودند. چند ساعتی در کوشک نصرت به هر سو دوندگی کرد و همه جا دنبال قاطع گشت. حیوان به آن بزرگی انگار آب شده بود توی زمین فرو رفته بود. به جایی که گفته بودند محل پست و امنیه است رفت، اما اتاق فقط بنایی پوسیده و خالی بود. به احالی آبادی پناه برد. مردم آبادی، صاحب کارفانسرا، قهوه چیها، همه به او جواب سربالا دادند یا مسخرش کردند. تا ظهر چیزی دستگیرش نشد جز اینکه با متصدی چماقدار چاپارخانه که با سیبیل دست جارویی جلوی در طویلش نشسته بود درگیری پیدا کرد گفتگویشان کوتاه و ناهنجار بود گفت سلام آقا سیبیل دست جارویی با پوزخند گفت چی میخوای بچه حال شما چطور است حرف تو بزن یا بوی من گم شده دیشب بستمش به درخت خوابیدم، بندش را بریدند، حیوان نیست میخوای من چیکار کنم؟ بشینم وسط یه کره یا بو بزام؟ نه خیر، میخواستم ببینم شما آن را ندیدید؟ حالا ما دوست شدیم پدر سوخته. البته مقصودم این نبود که شما آن را برداشتید پس مقصود چی بود تخم جنمه سگ. اگه اجازه بدید توی طویله را نگاه کنم که چه مرگته؟ شاید اشتباهی قاطی بقیه شده باشه، ها بله انگار آنجاست، با دهانش صدای بدی در آورد، بله؟ خفه خون بگیر، چرا؟ سیبیل دست جارویی پاشد آمد جلو، چماغش را بلند کرد، محکم توی سرشانه و گردن پسرک کوبید، هر اون لقمه دهن هرزه، وقتی افتاد سیبیل دست جارویی آمد جلوتر و با لگت توی سر و صورتش زد. چندتا تا فوش آب نکشیده ی رکی کم نسارش کرد. بعد رفت توی طویله در را از پشت کلون کرد. تمام شد. خون پیشانی و دماغش خیلی زیاد نبود. وقتی بلند شد آمد لب جوی آب نشست و خونها را شست. فهمید در اینجا دیگر جستجو و پیگیری برای قاطر بیهوده است. اوائل بعد از ظهر هر طور بود آمد، خورجین و خرت و را انداخت کولش، حرکت کرد، پیاده ادامه داد، گرچه کتف و تمام سر و صورتش بدجوری درد می سرش را انداخت پایین و با گام های بلند از آبادی آمد بیرون و از جاده شورزار بالا رفت. بیرون آبادی ایستاد، به آسمان نگاه کرد، هیچی نگفت. نمیخواست آنهایی که آن بالا شاهد او بودند، فکر کنند او ترسیده است یا شکایت و ناله دارد. از نخستین تجربهش با رفتار بد و گفتار بد این دنیا گذشته بود. میدانست که آنها همه چیز را دیده بودند و میدانستند. شش صفحه 20 تمام روز پیاده بیشتر از چهار پنج فرسنگ راه نپیمود. کالسکه ها و قافله های کوچک و بزرگی که بین قم و تهران رفت آمد می کردند، کمکش نکردند. او هنوز چندتا تا دوریالی تلا و یک نیم اشرفی در کیسه زیربند بند سترش داشت، اما آنها را پسنداز کرده بود برای تهران که چنانچه پدرش در شهر نیازمند بود، پول و ای داشته باشند. از پیاده آمدن عبا نداشت. زمین و آسمان و آفتاب را هم دوست داشت. بیشتر شب را نیز در نور ماه راه بیمود. فقط هنگام سحر یک دو ساعتی در دامن یک تپه خوابید. تیغ آفتاب دوباره پا شد. راه افتاد. میان دشت و آفتاب پیش رفت. این بیست و سه روز به قدری بین دشت و خورشید و آسمان و طبیعت ساده ایران و روی خاک قدم برداشته بود که کنون زمین و نور هستی جزئی از وجود و زندگی و نفس کشیدن او شده بودند. نه فقط خودش را احساس می و هستی را احساس می و زمین را احساس می و گردش خورشید و آمدن شب و روز را احساس می بلکه زندگی هایی را که در گذشته روی این زمین سپری شده بودند و در آینده می آمدند می فهمید و هستی را از راه پوست و فرو بردن هوا احساس می کرد و می فهمید که سخنان عموی پیرش درباره همیشگی بودن روان آدمی و هستی پس از مرگ و سخن پروردگار که همان فکر و خرد بود راست است این احساس او همان ایمان او بود. همه چیز ساده و راست بود. نزدیکی های نیمروز به آبادی کوچک دیگری وارد شد که میدانست حسن آباد است. ساعتی لب جوی آب باریک نشست خستگی در کرد. آبادی تمیز و خوبی بود و زیر آسمان آبی و چندتا تا پففی آرمیده بود. آن سوی جوی باریک کالسکی ای ایستاده بود و کالسکچی از پای سفید قشنگ را استراحت میداد. توی کالسک دو تا زن باهجاب خوب نشسته بودند و زیر روبنده به او نگاه میکردند و حرف میزدند. بیرون کالسک نیز مرد تهرانی فرنگی معابی ایستاده بود. فرنگی معاب باریش ریش و سیبیل فلفل نمکی، لباس شیک و کلاه بلند ناصر شاهی و عصای زرین در دست قدم میزد. لابد لابود منتظر بود خستگی از پا در برود تا ادامه دهند. پسرک آنها را مدتی با حسرت نگاه کرد. لابود از متمولین و اشراف تهران بودند. میشد آنها او را به تهران برسانند؟ پس از مدتی دل به دریا زد، بلند شد آمد جلوی مرد فرنگی معاب ایستاد، با ادب سلام کرد، بعد گلویش را صاف کرد و شرح مسافرت خودش را خیلی کوتاه تعریف کرد که از کجا آمده بود، به سر امویش چه آمده بود، به تهران به کجا میرفت و چرا میرفت رفت. فرنگی معاب با دقت و اندکی اخم به شرح ماجرای پسرک گوش کرد. به شنیدن نام شاهزاده ملک آرا صرفه کرد و از پسرک خواست که نام را دوباره تکرار کند. پسرک نام را تکرار کرد. فرنگی معاب با خنده سرش را تکان داد و گفت جالبه جالبه. بعد برگشت و به خانمهای محجبه سنگین که توی کالسکه نشسته بودند نگاه کرد. که آنها نیز انگار به حرفهای پسرک پا ویلان گوش کرده بودند. فرنگی معاب گفت، شنیدی سرعی خانوم، یارو میگه پسر فیروز آقای که هر سال برای شازده بار میاره. زنی که به نام سرعی خانوم با او صحبت شده بود، از زیر گفت، وای عجیبه. فرنگی معاب برگشت از پسرک پرسید، گفتی چطور شده؟ بابات گم شده؟ به یزد نرسیده؟ قصرت که حالا احساس می کرد این افراد پدرش را یا دست کم ملک آرا را شناسند به شوق و حیجان آمده بود. به آنها گفت که چند وقت پیش یکی از آشنایان یزدی که از تهران آمده بود به آنها اطلاع داده بود که انگار پدرش در تهران مریض شده است. این آشنا خودش فیروز را در تهران ندیده بود. در حقیقت هیچ کس خبر درستی نداشت. فرنگی معاب پشت چشمی نازد کرد. بعد دوباره برگشت به خانومی که با او صحبت کرده بود نگاه کرد. گفت سرای خانوم شما خبر مبری نداری؟ نه. فرنگی معاب گفت انگار شنیدم امسال شب عید ای باز این یارو آمده بود. چطور شد؟ سرای خانوم گفت لا من خبری ندارم. فرنگی معاب به طرف پسرک برگشت گفت کسی خبر نداره پسر جون برگرد برو چیزی نیست پیداش میشه برگرد برو یزد لابد حالا بابات برگشته رسیده پسرک گفت من باید به تهران بروم امیدوار بودم شما کمک جملهش را تمام نکرد فرنگی معاب با اخم و تمسخور پسرک را برانداز کرد اوهو اوهو بی سر و پای پرتوقع پسرک با خجالت سرش را پایین انداخت از گوشه چش به سوی خانم توی کار